ستایش ازان الله است بی نیاز کریم صاحب احسان بسیار و فضل بزرگ هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند او را می ستاییم بر نعمت های پیاپیش و خیرات پیدرپیش و گواهی میدهم دهم که نیست معبود برحقی جز الله یک تاست و شریکی ندارد و گواهی میدهم دهم که محمد بنده و فرستاده اوست الله درود بفرستد بر او و بر خاندان و یارانش و سلام بفرستد سلامی فراوان اما بعد پس ای مؤمنان تقوای الله متعال را با اطاعت از اوامر او پیشه کنید تا به کامیابی بزرگی نائل شوید و در دنیا و آخرتتان رستگار شوید چنانچه الله متعال میفرماید و عاقبت نیک از آن پرهیزگاران است و میفرماید همانا الله با کسانی است که تقوا پیشه کردند و کسانی که نیكوکارانند و نیز میفرماید همانا هرکس پرهیزگاری کند و صبر نماید بیگمان الله پاداش نیكوکاران را نمی کند. و البته از جمله اموری که الله شما را بدان امر نموده احسان و نیکی است چنانچه الله متعال میفرماید به راستی الله متعال به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد. بنابراین بنده در عبادت الله متعال احسان و نیکی می کند. همانطور که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید احسان یعنی الله را چنان عبادت کن که گویا او را می بینی. پس اگر تو او را نمی بینی او ترا قطعا می متفق متفق علیه. و بزرگترین آن احسان و نیکی در توحید و اختصاص الله متعال به عبادت است. آنطور که الله سبحانه و می و کسی که روی خود را تسلیم الله کند در حالی که نیکوکار باشد به راستی به دستگیره محکمی چنگ زده است و سرانجام همه کارها به سوی الله است. و الله متعال میفرماید آری کسی که مخلصانه روی خود را تسلیم الله کند و نیکوکار باشد پس پاداش وی نزد پروردگارش محفوظ است و نترسی بر برانان است و نه اندوهگی می شوند. پس عبادت نمی کند غیر از الله را و نماز نمیخواند مگر برای الله و هیچ کس را غیر از او به دعا نمیخواند. همانطور که الله متعال میفرماید و پروردگارت چنین, چنین مقرر داشته است که جز او را عبادت نکنید و میفرماید، به همانا آن مساجد اذان الله است پس کسی را با الله نخوانید و نیز می‌فرماید پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن و این است مقتضای گواهی توحید لا اله الا الله و مقتضای قرینه آن گواهی به اینکه محمد فرستاده الله است پس فرمان پیامبر اطاعت می‌شود و خبرش تصدیق می‌گردد و الله عبادت نمیشود مگر با آنچه که او آورده است زیرا الله مطال دین را کامل نموده و نیاز ندارد به اینکه چیزی از بدعتها به آن اضافه شود الله مطال در آیه‌ای که روز عرفه نازل شده است میفرماید امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین برای شما برگزیدم و از احسان و نکی در عبادت الله، پایبندی روزانه به نمازهای پنجگانه در اوقاتش می باشد. آنطور که الله متعال میفرماید فرماید، بر به آوردن نمازها و به خصوص نماز میانه یعنی نماز اصر محافظت کنید و فروتنانه برای الله به پا خیزید. و پرداخت زکات همان همانطور که الله متعال میفرماید و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است، پس آن را برای کسانی که تقوی پیشه می کنند و زکات میدهند و کسانی که به آیات ما ایمان می آورند مقرر خواهم داشت و از آن جمله روزه رمضان می باشد چنانچه الله متعال می پس هر کس از شما ماه رمضان را دریابد باید که آن را روزه بدارد و حج به طلال حرام چنانچه الله متعال می و برای الله حج خانه کعبه بر مردم واجب است البته کسانی که توانایی رفتن به سوی آن را دارند. و جمله احسان و ایمان به پروردگاری و معبودیت الله و ایمان به فرشتگان و کتابها و تمام فرستادگان او و روز آخرت و ایمان به قضا و قدر و خیر و شر آن می باشد. پس تقدیر الله لازم الاجرا و قضای او قطعا و به ناچار واقع می شود. پس چگونه انسان در عبادت الله احسان و نیکی نکند در حالی که او سبحانه و بندگان احسان و نیکی فرموده و با انواع نعمتها به آنان لطف نموده است. به طوری که آنان را از عدم به وجود آورده و خیرات را بر آنان ارزانی داشته و شادمانی ها شاد را بر آنان استمرار بخشیده است. الله متحال می‌فرماید: آیا ندیدید که الله را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است برای شما مسخر کرده است؟ و نعمت های خود را آشکار و پنهان به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است و می‌فرماید یقینا ما انسان را در بهترین صورت و هیئت آفریدیم و ریز می‌فرماید پس پر برکت و بزرگوار است الله که بهترین آفرینندگان است و همچنین می‌فرماید کسی که هرچ را آفرید به نیکوترین وجه آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد سپس نسل او را از اسارهی از آب ناچیز پدید آورد آنگاه اندام آنگاه اندام او را سامان بخشید و از روح خود در آن دمید و برای شما گوش و چشم ها و قلب ها قرار داد چه اندک سپاس میگذارید. و از احسان و نیکی او سبحانه و نسبت به بندگانش این است که کتاب را به سوی آنان نازل کرد و رسولان را برای هدایت بشر فرستاد همانطور که کتاب بزرگ اشت قرآن کریم را بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل فرمود الله متعال میفرماید فرماید به راستی که الله بر مؤمنان مننت نهاد هنگامی که در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او یعنی قرآن را بر آنان می خاند. که آیات او یعنی قرآن را بر آنان می خاند. و پاکیزیشان می دارد. و به آنان کتاب یعنی قرآن و حکمت یعنی سنت می آموزد و اگرچه پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند و می‌فرماید الله بهترین سخن را نازل کرده است کتابی که آیاتش متشابه یعنی همانند یکدیگر و مکرر است که از شنیدن آن پوستهای های کسانی که کس از پروردگارشان می‌ترسند بلرز میافتد آنگاه بوست و دلهایشان با یاد الله نرم می‌شود و آرام می‌گیرد این هدایت الله است که هر کس را بخواهد با آن هدایت می‌کند و نیز میفرماید چه کسی بهتر از الله برای گروهی که یقین دارند حکم می کند. و از مواردی که انسان بدان دستور داده شده این است که با انواع احسان به مخلوقات احسان و نیکی کند الله متعال میفرماید و همانگونه که الله به تو نیکی کرده است نیکی کن و هرگز در زمین در پی فساد باش بیگمان الله مفسدان را دوست ندارد این انسان به هر کسی که با او ارتباط دارد نیکی و احسان می کند. الله متعال می و به پدر و مادر نیکی کنید و نیز به خیشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه خیشاوند و همسایه بیگانه و همنشین و در راه ماندگان و بردگانی که مالک آنان هستید نیکی کنید. بیگمان الله کسی را که متکبر و فخر فروش است دوست نمی دارد. و از جمله احسان و نیکی تربیت فرزندان و تلاش در انسجام و همبستگی اجتماعی است پس شوهر به زنش و به زنی که طلاق داده است احسان و نیکی میکند و زن به شوهرش احسان و نیکی میکند الله متعال میفرماید زنان مطلقه را با هدیه مناسب بهرمند سازید و این حکم بر نیکوکاران الزامی است و میفرماید پس به شایستگی آنان یعنی زنان مطلقه را نگه دارید و یا به نیکی و خوبی آنها را رها سازید و نیز میفرماید و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیش سازید قطعاً الله به آنچه که انجام می دهید آگاه است و شریعت دستور به احسان و نیکی در تعامل با افراد ضعیف و ایتام داده است. الله متعال می فرماید و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به نیکی ترین وجه. و نیز شریعت به مسلمان دستور داده است تا با کسانی که با او کار میکنند از کارمندان و کارگران احسان و نیکی کند و با آنان مهربان باشد و به شروط منعقد شده در قراردادهای کاری پایبند باشد الله تعالی می فرماید و به عهد خیش وفا کنید بیگمان از عهد سوال می شود و نیز می فرماید ای ایمان آورده اید به پیمانها و قراردادهای خود وفا کنید و پیانبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید آنان یعنی زیر دستانتان برادران شما هستند آن را آنان را مکلف به انجام کاری نکنید که توان آن را ندارند پس اگر چنین کردید به آنان کمک نمایید متفقون علیه و از جمله موارد احسان و نیکی تلاش برای امنیت بندگان و استقرار کشور و تمکین مردم در انجام وظایف و اعمالشان و حفاظت از خونها و مالهایشان و پایبندی به قوانین و اطاعت از ولات امور در غیر معصیت که حفظ حقوق است و ترک آنچه که به فتنه می انجامد و تحریم آزار دیگران و من از تقویت تروریز و نهی از فساد در زمین می باشد و احسان و نیکی مسلمان به چهار پایان و نیز میرسد چنانچه پیامبر صل الله اللہ علیه و آله و سلم الله متعال احسان و نکی را در همه چیز واجب قرار داده است پس هرگاه خواستید بکشید به خوبی بکشید و هرگاه خواستید زبه کنید به خوبی زبه کنید و باید چاقویتان را تیز نمایید و زبیه خود را راحت کنید و نیز میفرماید احسان و نکی به هر موجود زنده اجر و ثواب دارد و مسلمان تلاش می کند که احسان و نکیش را به محیط نیز برساند با حفاظت از آن و عدم افساد و تباهی در آن و اینجاست که الله مذمت می کند کسی را که در زمین تلاش می کند تا در آن فساد کند و کشت و نست را نابود سازد و الله فساد را دوست نمی دارد. بلکه احسان و مسلمان هم به مسلمانان و هم به غیر مسلمانان می رسد اما که الله متعال می فرماید و غذا را با اینکه دوست دارند به مسکین و یتیم و اسیر می و همچنین می فرماید و پی تو به خیانت تازه از آنان آگاه می شوی مگر اده اندک از آنان. پس از آنان در گذر و روی به گردان، بیگمان الله نیکو کاران را دوست می دارد. بلکه احسان که تو به کسی می رسد که میان تو و میان او دشمنی وجود دارد. الله همتال می فرماید همیشه به نیکو تنین پاسخ ده، پس ناگاه می بینی همان کسی که میان تو و او دشمنی وجود دارد، گویی دوست است و اما, جز کسانی که و اما جز کسانی که شکیبا باشند آن را نپذیرند و جز دارنده بهره بزرگ از ایمان و اخلاق آن را نپذیرد غان احسانی که شامل معاملات مالی نیز می شود اللهم اتحال می فرماید به هنگامی که پیمانه می کنید پیمانه را کامل و تمام دهید و با ترازوی درست وز کنید این برای شما بهتر و عاقبتش نیکوتر است و نیز می کیست که به الله قرض دهد قرض نیکو تا آن را برای او چندین برابر کند همچنین آن احسان و نیکی تمام مخلوقات را در گفتارهای کلامی زیبا با آنان در بر می گیرد الله هم تعالی و به مردم سخن نیک بگویید و نیز می‌فرماید و به بندگانم بگو ای پیانبر با یک دیگر سخن بگویند که آن بهترین باشد بیگمان شیطان میان آنان فتن و فساد میکند به راستی که شیطان دشمن آشکاری برای انسان است و همچنین احسان و نیکی شامل همه می شود با تعامل عادلانه که هر فردی بر اساس تص... که هر فردی بر اساز تصرفاتش مستحق آن است و از آن جمله احسان و نیکی در دعوت به سوی الله است الله متعال میفرماید با حکمت و پند نیکو مردم را با حکمت و پند نیکو مردم را به راه پروردگارت دعوت نما و با روشی که نیکو تر است با آنان بحث و مناظره کن و همچنین می‌فرماید و با اهل کتاب جز به روشی که آن بهتر است مجادله نکنید. و از آن جمله احسان و نیکی در استقبال خوب و سلام و تحیت است. اللهم متعال می‌فرماید و چون به شما تحیت و سلام گویند پس پاسخی بهتر و یا همانند آن بدهید الله بر همه چیز حسابرس است و از جمله احسان و نیکی نسبت به مردم صبر بر اذیت و می باشد همانطور که الله متعال میفرماید و صبر کن پس بیگمان بی الله متعال پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد و شعن و ویژگی مؤمن این است که از بهترین گفتارها و کردارها پیروی میکند. الله متعال میفرماید: پس به بندگان بشارت ده همان کسانی که سخنها را میشنوند پس پس از نیکوترین آن پیروی میکنند. آنان کسانی هستند که الله متعال هدایتشان کرده است و آنان خردمندانند. و آن بدین سبب است که مؤمن میداند احسان و نیکی میدان رقابت و مسابقه است. چنانچه الله متعال میفرماید کسی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما نیکوکارتر است و او پیروزمند بخشنده است و میفرماید و او کسی هست که آسمان و زمین را در شش روز آفرید و او بر آب بود تا شما را بیازماید که کدام یک از شما در عمل نیکو تر است و اگر به آنان بگویی شما پس از مرگ برانگیخته می شوید مسلمان کافران می گویند این سخن جز جادوی آشکار نیست و نیز میفرماید ما آنچه را که روی زمین است زینت آن قرار داده ایم. تا آن را بیازماییم که کدام یک از آنها بهتر عمل می همان همانا انسان با احسان و نیکیش در عبادت الله و با احسان و نیکیش نسبت به بندگان الله در واقع به خود احسان و نیکی کرده است چنانچه الله متعال میفرماید اگر نیکی کنید به خودتان نیکی کرده اید و به دین ترتیب محبت الله و معیت و همراهی او و نزدیکی به رحمت او را به دست آورده است. الله متعال می‌فرماید و نیکی کنید که الله متعال نیکوکاران را دوست می‌دارد و می و یقینا الله مطال با نیکوکاران است و می‌فرماید و به نیکوکاران بشارت ده و می‌فرماید همانا رحمت الله به نیکوکاران نزدیک است و می‌فرماید بی گمان الله پاداش نیکوکاران را نمی نمی‌کند و میفرماید و کسانی را که نیکوکاری کردند با بهشت نیکو پاداش دهد و میفرماید برای کسانی که نیکی کردند پاداش نیک یعنی بهشت است و افسون بر آن رؤیت باری تالاست و تیرگی و خاری چهره‌هایشان را نپوشاند اینان اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند و میفرماید بر نیکوکاران هیچ راه سرزنشی نیست بلکه نیکوکاران را به خیر دنیا و آخرت وعده داده است. الله متعال میفرماید برای کسانی که نیکی کردند در این دنیا نیکی است و قطعا سرای آخرت بسی بهتر است و چه خوب است سرای پرهیزگاران و میفرماید مسلما پرهیزگاران در باغ ها و چشمه‌سارهای بهشت هستند و آنچه پروردگارشان به آنان عطا فرموده دریافت کرده اند بی گمان آنان پیش از این در دنیا نیکوکار بودند و میفرماید برای آنان هر چه بخواهند نزد پروردگارشان آماده است این پاداش نیکوکاران است و میفرماید ای بر بگو ای بندگان من که ایمان آورده اید از پروردگارتان بترسید برای کسی که در این دنیا نیک برای کسی که در این دنیا نیکی کرده اند برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند پاداش نیکوست و زمین الله وسیع است. جز این نیست که صابران پاداش خود را بی شما را تمام دریافت می دارند و می فرماید آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ و می فرماید هرکس که, شا... هرکس که کار ای انجام دهد خواه مرد باشد یا زن در حالی که مؤمن است او را به حیاتی پاک زنده می داریم و مسلما پاداششان را به حسب بهترین عملی که انجام می به با آنان می دهیم. پس ای نیکو کاران، گوارا باید بر شما چند برابر شدن پاداش ها، انطور که پیانبه صلی الله علیه و آله علی و سلم اگر هر کدام از شما مسلمانیش را نیکو سازد، آنگاه هر عمل نیکی که انجام می از ده تا هفتصد برابر برایش نوشته می شود. و الله متعال می‌فرماید، هر کس عمل نیکی آورد، پس ده برابر آن پاداش دارد، و از جمله احسان و نیکی و از احسان و نیکی الله به بندگان این است که درهای توبه را برای آنان گشوده است تا مادامی که در زمان مهلت دادن هستند بعد از بدین نیکی کنند به گناهانشان مورد مغفرت قرار گیرد همانطور که الله متعال میفرماید، مگر کسی که ستم کند پس توبه کند و بدی را به نیکی تبدیل نماید پس بیگمان من آموزنده مهربان هستم و میفرماید، بیشک نیکی ها بدی ها را از بین میبرند این پندی برای پند پذیران است و نیز میفرماید و بدی را با نیکی دفع می کنند فرجام نیک سرای آخرت از آن آنان است و همانا از آن چه شریعت آورده این است که با کسی که احسان را نیکی کرده است توسط دعا و سنا و اعتراف به احسان و نیکی و او برخورد شود بدین دین سبب به منبر صلی الله علیه و علیه و سلم کفران و احسان و نیکی را با انکار و عدم اعتراف به آن مذمت کرده است و به راستی از جمله کسانی که به قاطبه مسلمانان احسان و نیکی کرده است خادم حرمین شریفین ملک سلمان ابن عبدالعزیز و والا حضرت ولی اهد و شاهزاده محمد ابن سلمان می باشد با سرپرستی امر حجاج و وعهدهداری خدمت حرمین شریفین و تلاششان در حفظ امنیت این دو مکان و فراهم نمودن افرادی که به حجاج و عمره‌گذاران احسان و نیکی کنند و نیز توجهشان بر سلامتی و موسم حج از اینکه مکانی برای انتشار بیماری یا اینکه کانونی برای وبا باشد و تلاششان در برگزاری مراسم حج به روشی درست که الزامات حفاظتی و فاصلگذاری گذاری اجتماعی رعایت شود تا مقاصد شریعت در حفاظت از نفس محقق شده و این فرمودی پنبر صلی الله علیه و آله علی و سلم اطاعت شود. اگر خبر تا اون را در سرزمینی شنیدید پس وارد آن سرزمین نشوید و اگر در سرزمینی واقع شد و شما آنجا بودید پس از آن سرزمین خارج نشوید. الله متعال به هر دوی این بزرگوار بهترین پاداش ها را عطا فرماید و در اعمال آنها برکت نهد و آنها را از اسباب خیر و هدایت و سعادت برای تمام مردم قرار دهد حج واجبی بیت الله الحرام مناسکتان را ادا کنید طبق آنچه که پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم انجام داده است بنابر این سخن او مناسکتان را از من یاد بگیرید و بنابر این فرموده الله عزوجل وجل و عمره را برای الله به اطمینان برسانید و بدین ترتیب از کسانی خواهید بود که حج را به نیکوترین وجه ادا نموده اند و در این مکان شریف برای خودتان، فخیشاوندانتان و حکام کشورتان و برای اموم مسلمانان بسیار دعا کنید زیرا الله متعال در هیچ روزی به اندازه روز عرفه بندگان را از آتش دوزخ رهایی نمیبخشد. بخشد اون نزدیک می شود سپس به وسیله آنان بر فرشتگان فخر می ورزد بالاله احسان و نیکی کن به بندگان مؤمنت و به آنان توفیق ده به دیگر احسان رو نیکی کنند باراله در میان آنان الفت برقرار کن و کلمه ایشان را برحق جمع گردان و قلب هایشان را اصلاح گردان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در عرفه خطبه ایراد نمود سپس بلال ازان و اقامه گفت و پیامبر نماز ظهر را دو رکعت قصر خاند سپس بلال اقامه گفت و پیانبر نماز را نیز دو رکعت قصر خاند سپس در فراز شطرش در صحرای عرفات وقوف نمود و الله را یاد می کرد و او را به دعا می و هنگامی که قرص خورشید غروب کرد به سوی مزدلفه راه افتاد در حالی که می ای مردم آرامش و وقار را لازم بگیرید و زمانی که به مزدلف رسید نماز مغرب را سرکعت و نماز اشارات درکعت جمع قصر خواند و شب را در مزدلفه سپری نمود سپس نماز صبح را اول وقت در مزدرفه خان و تا روشنایی بامداد الله را به دعا خواند سپس بسوی منا حرکت کرد و جمره عقبه را بعد از طلوع خورشید با هفت سنگریزه رم نمود بعد قربانیش را زبه و سر مبارکش را تراشید بعد از آن تواف افاظه را انجام داد و در ایام تشریق در منا باقی ماند و الله را یاد میکرد و جمره های سگانه را بعد از زوال رم می میکرد و نزد جمره سغرا و وستا دعا نمود و همچنین به افراد معذور برای ترک و در منا اجازه داد پس چون مناسک حج خود را به جای آوردید الله را یاد کنید همانند یاد کردن پدرانتان بلکه بیشتر از آن و از جمله دعاهایتان باید این دعا باشد پروردگاه را به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی عطا فرما و ما را از عذاب آتش نگهدار، اینانند که از آنچه چه آوردهاند بهره ای دارند و الله متعال سریع الحساب یعنی زود شمار است و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماندن در منا تا روز می باشد و اجازه ترک منا در روز دوازدهم را رو نیز داده است آنگاه که از اعمال حج فارغ شد قبل از سفرش به الله را تواف نمود با کومنزه است پروردگار تو پروردگار عزت از آنچه چه مشتگان توصیف می کنند و سلام بر رسولان و ستایش از آن الله پروردگار جهانیان است و درود سلام الله باد بر فرستادش محمد امین